بسم الله الرحمن الرحیم خداوندی بی مهربان احربان نهایت باره انگامی که منافقان نزدی تو می آیند گواهی می, می دهیم که تو واقعا پیامبری خدا هستی و خدا می که تو واقعا پیانبر او هستی و خداوند گواهی می که منافقان واقعا او هستند شان را به روی اعمال بدشان سپری قرار دادند به ترتیب مردم را از راه خدا باز داشتند چی بد است آنچه را انجام می دهند این است که ایشان ایمان آوردن سپس کافر شدند پس مهری بر بردلهایشان نهاده شد بنابرا نمی فهمند که ایشان را بنگری کیافه و زواهر ایشان ترا به شگفت می آرد. و اگر سخن میگویند گویند سخنان ایشان گوش فرا می دهی گویا ایشان چوبهای عن مجسمه های چوبی اند بر دیواری تکیداد شده کی آرای ایستادن به پای خود را ندارند هر آواز محیبی را بر برزد خود می پندارند ایشان دشمنان شما اند از این رو از آنان برحضر باش خداوند هلاکشان کند طور از حق برگردانیده می و هنگامی که به ایشان گفته شود بیایی تا پانبر خدا برای شما آمرزش بخواهد سرهای خود را می بانند. و ایشان را می بینی که تکورکنان روی برمی برای ایشان مساویست خواه برای شان آمرزش بخواهی یا برایشان برای آمرزش نخواهی هرگز خداوند ایشان را نمیآمرزد بیگمان خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند ایشان کسانی اند که می بر آنانی که نزد پیامبر خدای خرج نکنید تا پراغنده شوند در حالی که خزانه های آسمان ها و زمین از آن خداست اما منافقان نمی دانند می البته اگر به مدینه بازگردیم بگمان صاحبان عزت مردم خوار و بیچاره را از آنجا بیرون میکنند. مگر حقیقت این است که عزت از آن خدا و پیامبر او و مسلمانان است اما منافقان نمی دانند ای مؤمنان دارایی شما و اولاد شما نباید شما را از یاد خدا غافل کند و هر کسی که چنین کند پس هم ایشانند زیانکار و از آنچه به شما ارزانی کردیم خرج کنید پیش از اینکه مرگ به سراغ یکی از شما بیاید و در این حال بگوید فروردگارا ای کاش مرا مدت کمی مهلت میدادی، تا خیرات میدادم و از جمله نیکوکاران می شدم ولی خداوند کسی را چون اجل او فرار است محلت نمی دهد. و خداوند به آنچه می کنید آغاشت.